اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرين المعصومين اللات دائما على عاداي اجمعين اللهم فرج اجمعين ورحمنا برحمتك يا رحمان روایات قش رو متعرض شدیم اول از بعضی از روایاتی که در از ما آمده بود که بعضی انصافاً داره یه فوائدی بود از این روایات موسبن بکت از موسبن جنفر سلام الله علیه بلی سلام الله علیه ما و اجمالاً برایات صحیح هم داشتیم این متن من قشنا فلیس مننا من قشه فلیس مننا این هم در متون صحیح ما وارد شده بود. از برای روشن شدن این مسئله قبل از اینکه شما یه مقدار در روایات ما از کتب عاممه یعنی روایاتی داریم که اسسانیدش به اهل سنت برمیگرده. گفته برای اینکه اون روایات رو بهتر متعرض بشیم ااصل کنم که متعرزه به اصطلاح مسئله روایات اهل سنت رو برد راجع به روایات اهل سنت یکی دو نکته قبل از اینکه چون ما در روایت خودمون از اصانیدی داریم که به اهل سنت میشه متونی هستن که اونها ندارن اهل سنت ندارن ارز کنیم که در متون اهل سنت من قشه من قشنا فليس مننا وارد شده تو یک متنشم لیس مننی هم وارد شده من قشنا ان شاء الله الان توضیحش میکنیم ما را چه به روایت اهل سنت که ان شاء الله میخونیم یه نکته رو همیشه عرض کردم که گاهی اوقات احادیث با اینکه خیلی مشهوره، ممکن است بعضی از بعض ائمه به اصطلاح خودشون به اون روایت اعتقادی نداشته باشن این روایت من قشه من قشنا فلیس مننا به اثانید متعدد در فضو وحر سنت آمده که بیشترش هم اون به به ابوباره بیشه و شعن نزولی هم گفته شده اینجوری که روزی پیغمه رد میشند یک کسی خرما میفروه به اصطلاحا مثلا این دست روشان خرمای خوبی بود خیلی پیغمه از خرما خوش نموده بعد جورایی به هزار به اینکه که اون زیرش نگاه کن دست بزن این زاهرش نگاه کن اگر دست زیرش خوب نیست یا دست دن باران اتر شده بعد حضرت من قشناف نیست بدم این شنن هم اینجوری نرده شده چین موردی؟ ارز کنم که در کتب اهل سنتی که من دیدم در صحیح بخاری در این موجه و هم نگاه کردم در سهی بخاری حدیث نیامده من خیلی هم عجیبه من چه اشکال سندی در حدیث داشته در سهی بخاری نیامده اما توی اقاله گفت که دومی سهی مسلم آمده من قشنان من قشه من فلیس منی هم در سهی مسلم آمده فلیس مننا هم آمده فلیس منی هم آمده هر دوش در سهی مسلم آمده در بقیه کتب اهل سنت هم الاماشالله آمده مخصوصا متفرقات در مسانید صحابه در عده از صحابه در مسنده احمد آمده شاید اون چیلی در مسنده احمد آمده از بقیه بیشتر باشد هم این این راجع به نجمان تصدافن چون وقت منم کم بود حالا خیلیم حال و نداریم نشد نگاه بکنم بیدم اشکال بخاری سر کدومی که از این متونه چه اشکالی به استادر روایت داشته که سر مثلا چی جهدیش بوده از مشاهیری که یکشنبه حدیث از اون نقل نکرده اگر آن بعد کسی پیدا کند، ما محبت خود را بدونیم. بله، حال اجمال نزدیکی این حدیث از سئیب خوار نیست. در مسلم فهمان بعد هست. اما نسبت عدد بیشترش رو در مسند احمد دیدم. هزینه مراجع مفهوم تو مسند احمد یک از وبری است. و این یک نکته. نکته دیگری که در اینجا هست در کتاب اهل سنت در اکثرشون مثل همین ترمذی و نمیدم ابن ماجه و اینها این روایتات رو تو باب بینه، کتاب البیوع یا باب بیه. و همین کار رو هم در دنیای ما مرحوم مج... کافی انجام ده، کلینی ایشون هم تو باب بیه آورده. باب قرارداد باب الحش تو باب بیه آورده. و, و سال هم که خوندیم، مرشقه انصاری هم تو ف تو اباب مکاسب محرمه آورده اما بعضی از علمای اهل سنت این رو تو باب ایمان و کفر آوردن اشتباه نشده من همه مسلم مسلم این حنیث تو باب ایمان آورده ظاهرا از کلمه لیس نا نفی ایمان فهمیده مناسب نزید تو باب ایمان و کفر بیاره دقیق کردیم البته اون در این باب چند تا حدیث داره یکیش من حمل از سی سلاح علینا من شهر از سیف علینا فلیسی مننا هر کسی رو ما صلاح بگیشه از ما نیست و من قشنان فلیسی مننا و من قشن مسلمین و من قش فلیس مننا این یوتا رو با در شرح سعی مسلم نروی اشکال کرده که این خب واقعا مجبه کفر نیست کشیدن سلاح لذایشون فهمده بگه این که به غالب باشه. یعنی باید باشه که این کاری که جایز نیست اخافه محمد جارزه به قتل محمد این رو حلال بدونه که بگیم این کار ضروری ولو به منازمه هم میخواد تصور نکنه این منشه کفله دقیق میکنه و الله خود هم گیر کرده که این مثلا چه مسلط تو باب ایمان آورده علمای ایم. ما توی باب بیو و بیو آورده و همین هم درسته این قایتش اگر درختی میخواد اثبات بکنه اثبات بکنه حرمت رو حالا مثلا جزو کبائر تصادفاً توی یه روایت کبایر هم قش نیامده حالا فوقش اثبات بکنه جزو گناهان یا فرغش جزو کباه. من قشراتی نیستم کبای که یک احتمال دیگه هم هست که شاید ناظر این باشه که اصلاً قش به عنوانه موضوع نیست به لحاظ آثاری که براش بار میشه حساب میکنه اینطور استزاح روایت این, این کلام رو عرض میکنیم عبنای فرقی این رو در اونجا عرض می کنند هر حال نکته رو دقت بفرمایید پس این دباید در مسادر آمه آمده مخصد تو مسادر احمد فقط تو سهی بخاری تو که من دیدم خیلی حلوان کامل نیست و غالبا هم تو بیو باوردن تو بحث بین اما مثل مسلم توی کتاب ایمان آورده و این اثبات ایمان خیلی مشهد یعنی کسی باید بشه کسی بحش میکنه فرض که مثلا شیر رو توش آب بریزه بفروشه این خیلی واقعا کافر بشه با این کار نه کمیره. کافر بشه با این کار خیلی تصورش مشکله اثبات کفر به سنگین تر از این هم مشکله و مگر این خوارش که تون رو برسن خلال همون لاب باز ببسته می حدیث چون نرز کردم که خوارش غالبه واسده نیستن یعنی یا, یا کافر. کبائر رو میان موجب کفره اگر فتخون از تجربه شبه خورد از زنا کرد کافر فاسق رو قایل نیستن درجه بین منزله بین منزله فین نیستن بگر این تصورات و الله الان بنای علما… علمای ما بر این نیست که غش کردن و آب رو باشیر مخلوط کردن این منشأ کفر روشه ازگرم تو رویت منجز کبائرم نیمارد تو رسی کفر درد حالا این حالالله بعد توضیحات رو بیشتر عرض میکنه پس این یکی دو نکته راجع روایت به روایتی که اهل سنت راجع به مسئله اصطلاح قش دارن و در باب وارد شده که معلوم میشه با هم یکی هستیم در این جهت در اصل روایت. نکته سوممی رو قبل از این اینکه اهل سنت رو بخونم چون از کتاب کنزل آماد میخونم که سند و مرا به اینها را هست میکنیم هجمانم خونده میشه البته در کتب اه... فقه هرسولت هم در که من چند تا کتاب دیمخی نهید اینا بیشتر تا بحث بی متعرض شدن مثل مرحوم کلی تو بحث بی متعرض قرش شدن نه تو بحث ایمان و کفر خیلی هم بریدی کسی قادر میشه به انجام دادن قش طرف کافر بشه ما سنه همون در کتاب مسلم خیلی عجیبه اصافه از خودم که ما یه راه دیگر غیر از این راهی که نرفتن اینه که ما در بخش سنت رسول الله سلامت الله سلام علیه وقتی میخوایم خوب دقت بکنیم اینه که از راهاش اینه که مجموعه مساقلی که مرتبطه با این اونها هم نگاه بکنیم چون ولی مثلا قرشی یک چیزه مثلا قبل قبل چیزی دیگریه مثلا کتابی که قیمتش 1000 به 10000 تاره بفروشه از جهل طرف استفاده کنه گران بفروشه مثلا قرن یک چیزه یه نوع مثلا کردن که متأخر بود در اون زمان از مهم شد باشه مثلا گوسفند میخوان بگن که این خیلی سچاورش بشه آه مینه یا که میخوان بگن که خیلی شیر میده چراش شیرش نمیشه چونش بزرگ میشه یا این در دولت عرب تسغیه میگن که ساد را یا وهای منغوته برستم و شات مسرات مسرات مورد اینه یا ابل مسرات اصلا با بیدارن در رواید داره که پینامه از این کار نه فرمودن فرمون این کار نکنید تصریح نکنید و اگر هم بر فرض این کاره کردیم یک کسی به شما یک شطو فروخت. این خیلی پوستانش زیاده به شیرش زیاده برگرفتین دو شیرین تموم شد پشت پشت مثلا نگه بوده دو سه روز عبدال ندوشید تا بزرگ بشه شما حقیق خیار فسخ دارین لیکن دا این شیری که اول خورده خورما هم باش بدین حیبونه پرگردونین اون شیری که خورده من از پولون شیر همینه مثلا خورما این شیدی همراهش بدین دقیق فرمدین پس ما در بحث قش مخصوصا اونی که ایرجعه لا سنت رسول الله اون راه صحیحش در حقیقت اینجوری هستن این که میگن خبر شواهد کتاب سنت داشته باشه این مراد از شواهد کتاب سنته مثلا استن سعی میکردن حیوان مثلا کوسترش بزرگ دیده بشه که مصربات شات مصواد یا بهله سعی میکردن سر طرف مقابل کلاخ بذارن کتاب هزار تومنی بروشن ده هزار و حالا مجبرا چیزهایی که از این قبل بوده که من چند بار کردم اصلا در دنیای سرمایه داری اصلا فرصا استفاده از جهل طرف بکنن یه چیزی رو که مجبوره بفروشن اصلا بیا بیا اینجا این حوزه بگی توش رو جنبان چند ماهی من همه این رو فرطا بینادم حالا این ممکنه وسیله داشته باشه، ماهیتش رو یا بخواد میگه چنداش بمیرن، همه چیز هست دیگه. اینها رو در اصطلاح روایات ما ازش تعریفش به قرن. اما در دنیای امروز در دنیا سرمایه‌ای که از راه های جمع شدن و انباشت سرمایه همین راه‌های قرنی، یعنی کناغوشات سر در مقابله. یعنی همین اقدام در معاملاتی که به قول اصطلاح روز توش ریسک هست و دوام هست و خطر هست اقدام بر اینها منشأ درآمد زیاده اصلا درآمد میشه اگه درست بشه مثلا کاغذی میگه توش من یه چیزایی می‌ذاره میگه اون که یه چیزی 1000 تایی باشه یا ده میلیونی باشه با مجموعه این کارها و و خوب خود دقتو ما از مجموعه روایاتی که در باب غبن و در باب ضرر و در باب ضرر و در باب غش غش یعنی شما یک روایت رو تارتن دنبال مهتون رویات قشنی اخرامیه نه مجموعه احکام رو بررسی میکنه ببینید شاره مقدس توی بحث به یه مجموعه هماهنگی رو بسیار پیریزی کرده که اون مجموعه بارد از این است که انسان جهالت نداشته باشه زرر خودش درست نکنه چیز خلاف واقع نگه مثلا آب رو با شیر خاطی بکنه تقاضا این میشه مجموعه سنن یعنی از مجموعه سنن پیغمبر اکرم مجموعه تو در میان مثلا شات مصربات یا ابل مصربات مصربات اون است که نگه داشتن ندوشوندن تا این به تبدیل به سازه شیر پستانش بزرگ بشه اینا علاوه داریم این انصاف قصه اینها هم یک مجموعی است که در روایت به ما الان بعض از روایتی که میخونیم برای آشنایی بیشتر یه مجموعه رو در نظر میگیریم اقصد در روایت رسول اللهشون به عنوان سنت و به عنوان مشرعه حالا چرا این نکته سنت و مشرعه یعنی چی؟ چون این تصور پیدا شده حتی در بعضی از سوارش ما تو علمای خودونم داریم این تصور پیدا شده که حالا فرسون یه بیگه غراری بود جهالت داشت بعد بس یک بسته ای رو گره به طرف داد گویی رو میشن به تو ده هزارتان اون که تو جگمینیو باشه اون که باشه پوچ باشه شما میگین نه نبی نبیه هم قرار پیغمبر فرموند که معامله قراری نکنیم خب شما از اون طرف هم اطلاق آید داری تجارت انتراز یه تجارت انتراز نداریم حالا من راضی هستم این بسته ولی و مجهوده به ده تا شما راضی هستید تجارت انتراز لذا خوب دقت بکنیم هدف اینه که این مجموعه روایات جزء سنن پیامبره که تغییر کتاب بیزا یعنی اگر این نکته فنی فقیر از اون روشن شد ما دیدمون اینه که میگم مجموعه نگاه بکنیم چون این مجموعه میاد در مقابل اطلاق تجارت انتراز میمیشه الان خود قرم این تجارت انتراز این من راضی راضیه بود کارش درشون من راضیه این هم راضیه یا مثلا اقفو بالاغود ما قرار داد بستیم. این کتاب به ده هزارتون بردان اونجا ازارتون خیلو خوب میگه من بهش گفتم ده هزارتون بود و قبول دارم لذا مثل ابن هست یه خیار نداره این عقل لازه تمسک به با اقفو بالاغود تمسک به با تجارت انتراز موارد جهر موارد قرار. از کنم این توضیح کچی کلمه نهند نبیان به القرار یا القرار کلمه قرار رو بعضی جه جهر گرفتن بعضی معنای خطر ریسک به اصطلاح اونز ما ریسک گرفتن بعضی ها به معنای خدا و نیرنگ و مکر و فریب و حیله خدا مخاده گرفت. از کنیم مرحوم این را ابنسان الله سره میگه خب یه هست معنا با هم جمع بکن چه اشکال داره قرار خودش جهره جهر زمین ساز خود است جه زمین درست برای خدا برای فرید خدا هم زمین ساز خطرگر اصلا ما این سفر رو با هم دیگه جمع بکنیم شما در طول همه مثل این کسی که من با انگشتم نوشتم این انگشت نسبت اسناد که تاهای میشه داد به دستم میشه داد به خود شخصم میشه داد به نفس. الاخرین اصناده های مختلفی دید در طول همه پس جر هست جر معدی میشه به به اصطلاح خدا و خودعه و مکر و حیله خدا هم معدی, معدی میشه به خطر برای انسان انسان در خطر انسان. پس نهن نبیان اگر پس روشن شد این بحث قشن تو بحث, تو بحث قشت اگر ما نتوانیم مباحث و هناوینی رو مثل قش و غرر و خطر رو نمیدونم ذره رو اینها درست بکنیم قبله و البته خب انصافشم هم همینطوره یعنی ما روایت سریعی خود ما هم در خیار قبل نداریم خود شیعه هم شیعه قالب خیار قبله هست اما روایت نداریم یا روائه تیز که اهل سنت داران ابن مسترسل حرام و کفر و, و که اگر کسی به شما اطمینان پیدا کرده مسترسل کسی که به شما آرامش پیدا کرده همه شما دارن وقتی همه شما داره جنس ده تا شما خبونداره 10000 جنس یه هرمانی شما؟ 10000 اون شما نظره کرده تسلیم ابر شما شده ولی زده بعضی از روی که قبل مسترسل ربازی میسه ربا مونه فرقی باقی با ندره پس بنابراین کوب دقت بکنید این اناوی رو که ما اثبات می‌خوایم بکنیم تمام جزب سنن و نبی هستن قرار و زرر و خطر و نمیدونم همیه قشن و... این ها جزب سنن و نبی هستن که نتیجش اینه که اطلاقات کتاب رو تغیید میزنه نحوه تغییر ده تا به تجارت آن ابن حسن توسف مون رو اولو میگه آیه که که در قن اولو برود واجب نیست اولو قبل او بالاخره میگه این آقا گفته این کتاب 10000 تومان من فروشمش 10000 کار خلاف قانون نکردین خلاف اول اروزی ها. خلاف دین و خلاف شریعت این آقا گفت تومان من, اون آقا گف من میخرم. چرا روابط کردند. رایت ما هنگ این سر و کلا سبب سر سبب فریب دادن، این کارو بلیک کرده اما اینکه تولید حق قیار میکنه، این دیگه چرا؟ باشه؟ او فرق رابطه ما رو بگذار. معلومه شریب را به من قطیفی، شریب را نسلی به قطیف میاد. و از دیگر است. تو بحث جد ترسونه به تجارت اعتراض. یعنی انسان جهر داره که توی اون برقه چیه؟ بدخل تجار در این ترازه بشه بگیم بگیم آبون که از 10 ده خواهر تا ده میگو اما من به شما ده هزار به بسته رو آباده بکنه انسان توش. و اون آقایونی که قائلا که این کار درستی نیست دوشن اون آقایون نکته فنی اون آقایون اینست که درسته اطلاعات کتاب همینطوره که شما فرمین اما سنن پیغمبر سنن نبی در معاملش این توضیح من روشن شد پس ما اگر رواقه خش رو یک در متون رو میخونیم هم برای بیان سعدش و مدنش رو خصوص و هم دو که خیلی مسئله مهمیه اون اینه که این حدود این سنت پیغمبر اکرم رو در معامله در بیاریم آیا اگر معامله درش خش شد یا پولی که مخشوشه باش معامله انجام بگیره آیا ترون این سنت نبی جزء رو باطله یا نه. بل از چیزهایی که ما در روایات اهل سنت به عناوین مختلف هست مثلا مسئله عده از روایات دیگه که قضار این که بیخاری چیزی چیز که بیخاری حتما بزن این مردان بازن گندو ریخه اینجا من راضی هم این مخابل درز آقا ازشون این من راضی هم به درده بخورم باید این گندو مردانش معنیم بشه چند کیلوست اون وقتش بخوریم این تجارت هم تراز به درد نمیخواه راجب روایاته که در باب غشه توی این روز اگر ما با ذهن مدرکشون باشه توی دوت سکونی داشتیم شب اللبنه به معلل بی این ارز گفتنه اگر لبن رو شیر رو با آب مخلیز که خود بخوریش که آن حرام نیست که فیلش پی نفسه حرام نیست اما اگر بخواییم بفروشید این حرامه اینجا هم در این کتاب کنزر امال، این کتاب کنزر امال از جلد چهارش این چاپ معروف، این جلد چهارش در عباب بیه درقش میکنیم، چون در عباب بیه، ایشون بابراده نکش اونجور به یک مناسبت داره سلاسون فیهن البرکه خیلی همین منشأ این که وضع اقتصادی خوب بشه اون هرچی روشن‌تر باشه در دنیای قرض همه هرچی تاریک‌تر باشه، <تصفح> این تاریکیش بکنه. چون هرچی تاریک‌تر باشه درآمد مالی داره. البته همش که درآمد مالی غیر متارف داره، خرابی مالی غیر متارف هم داره. ما رایتو صباغه، اون فردا جانبا همون مزینه. هم. درسته برای کسی ناداره که در یک روز میلیار بشه. او چن اغلیدرید بزادش خراب میشه اینطور نیست ورا هم فقط یکی رو نگاه رکھیں اون ورش رو نگاه بکنید لذا در این تعریض دیدنیه سرازون خیر و برکت این اگر نخواد برکت در این در اینا به عکس اون کار یکی البیو ادا اجل نسیه باشه به یکی مبارزه مبارزه همین به اصطلاح چیز به اصطلاح چه میگن مبارزه و البر به شعیر للبيت لا للبین گندوم و رو با هم مخلوط کن اگه برای مصطف خودتون نوره فروش چون مثلا نانی درسته اون که از این دوتا بشه یا مثلا یا حالا یک ادلی از روایاتی که ما زیاد داریم هم بر رسول نسبت نصفت داده شد من بعدش میخواهم برای این که نورانیه هم باشه و به با امیر و محلون داده شده نسبت داده شده این در ترمیزوی اینا هست یا تو تجار انا و یا به اصول یا من قیامت فجارا الا من تقلاح و بره و صدقه. راست بگیم بینید هدف اونه که چیزی مغفی کاری نقطه تاریک درست و دقیق بیان بکن زیاده بله من دیگه مخابم چون کل اینها خونده بشه که اینها به اصلاح درده مثلا در بعضی از روایات داره که این میگرم چون در احکام به غالبا آمده الله اونجا متعرض میشیم من میخوام برای یک زمینه یا. این اینه هر کنون میشه هم وقت خاص خودش داره کی گفته شده و خودسات چینا مثلا ادم تعتامن فلا طبعه با حتی تستوفیه بود یکی از آمان کنا متعارفه کن مثلا نیا من ده سیمان از. وقتی کرد وارد کردی می خیلی می‌باله مثلا همین به مثلا ده ملیون. همونجا که دیگه چیزی نمی‌شه دلیل روایت آمنا آمده در تاام خص تاام مثلا ده تن گندم خرید این ده تن یک جبهه کس دیگه با کیلون. مثلا دو تن اضافه نمی‌شه اعلام کردن نمیشه ده تن که خریدی باید بگیری قبض دو مرتبه با وزن و او حتی او یا حتی یا استوفیا، خود واسطوفیا. یکی دیگه از اینا رو به مالایس اندک که این خیلی معروفه، اون تونه داره این غالبا کار تودجار همچین دندال و واسطماننده. مثلا چای، میاد به یا شما مثلا چه گیلان می‌خواد چند کلیچر آکلی مثلا 5000 تا. میره از یک رفیقش میگه چم مثلا میگه من 100 کیلو برای چای پول از یک نقدی اخه مدینه آقا به اسم پنجازون. یکی از کارهای این حکم ابن خزا که تاجر معراقی بود در مکه، مثلا به صدای حضرت خلیجه هم هست، یکی از های تجار این بود. می جنسی رو به هنوز خودش خوداش نخریده بود، بعد می اومد پیغمبر خم لن هنوز در مکه تو داخل نشده، بله. نفروش. این هم تا من بعض یک ککیپ می خودم فقط برای آشنایی. در روایات داره که لا توسه ابن غم مثبات عنی بنم و شطور رو وسف و شطور رو پوستشون رو بزرگ نکنین و من تا بعد کسی که خریف ان به خیر نظره بعدعنی اهل باها میبره تو خونه شیرش میدونش نگاه میکنه. اگر واقعا شیرش خوب میخواد میپسند و نگه میداره به خیر نظره یعنی نگه بدار یا بخوشه انشائه همسک و انشائه رده ها اینم عیبه خود مسرات عیبه مأسا وسا تمره یک چند کلو هم سه کلو هم با رحب میکنه برای اون شیری دو جیبه بعد دیگه این زیاده منشتر آشاتن مسراتن فرابلی ها مسرات معناش همینه از جمله‌ای که عناوین ما داریم بیع المحفلات خلافت خلافتان ونا تهلل خلافت المسلم اینو ابن ماجه آورده از روایاتی است که در روایات ما در راویش از راوی ججلی ما و جابر جوفی نقل کرده چون جابر جوفی بین اهل سنت غالباً تصیفش کرده بیع المحفلات تهلیل یعنی یک مثلا غذای آبی چیزی بهونه گندهی میشه چاب همون هم در واقع واقعا اینقدر چاب نیست میبینی تو خوند روز غذا میگه همه گوشتش میریزه بعد یه آبی این رو استراحت محفلات میگن دقیقاً همین ما اون مجموعیدی که با حشره داریم نگاه میکنیم بیگ او محفلات خلابتون خلابه از خلبه معنی گول زدن خدا یک نوع فریبه یک نوع خدا اینو است اینو هیله است و لا تحلل خلاب و من میخوام بگم که این مسئله قشم در یک مجموعه ای از سنن پیغمبره در یک مجموعه از سنن پیغمبر یکیش خلابه است یکی مسرکه یکی قبض ماله یکی ایشالا میاد غرره یکی زرنه این یک مجموعه است این من عبداله روز خوندم برای این که اصولا اگر میخوای کاری بکنی همیشه در سنن و شباه دوستم راهش و راه فنی و قانونیش اینه اون راه قانونیش اینه که ما اطلاعات قفوگر داریم، داریم اطلاقات تجارتن انتراز داریم این سنن در مقابل اونها ایستاده. اصلاده و الا که بگه شما شات مصبات خیدید تا سه روز همه سب بکنه اگر پستونش و به خود گنده شده، اون رو تایی وقت بکنه یعنی چه یعنی قفوگر اوگود تخصیص خورد قفوگر اوگود ب پس این جزء سنن پیغمبره و از کردم ادوهی هم خب قایل نیستن در باب غرم قایل نیستن این هم جزوه سنن پیغمبر که آمله در مقابل اقفو در مقابل تجارت انتراز پس البته به این محفلات چند تا مردم داریم یکی دوتا هم نداریم بله من نمیخونم همه محفلات رو خیلی زیاده روایات مسررات و محل. البته بیشتر همون روایات به اصطلاح م... چیز روایات به اصطلاح مسرات بعد از جمله چیزها مثلا ولا تبایو لا تنا مسو ولا تناجشو ولا تماییو به قرار به چند جا بلی مثلا لا یهل و درج یهل تا آفن جزافن قد مکیله کهی میدونه حتی یغلب صاحبه پس به مچهول نمیشه بیه قرارم نمیشه قرار از کردیم به شما تفسیح شده به جهر به خدا و به خطر به یکی از خطر داره انسان که احتمال به تمام مخلوقش نرسه یا بایه یا مشتری و از آخره بهترش همون جهر انسان از جهل طرف استفاده کنه به او بفروشه بعد دنبال این به اقرارم اینجا بل دو مرتبه آمده روایات زیاد اصلا من از نمیخوام متحرز اون روایات بشم ایشون در صفحه 59 از این جلد چهار بحث خیل خدار و خود کتاب به اصطلاح جناب آقای کنزل امان در این فرق سوام فلخدار ولهش در این جا لازر و رو آورده البته لازر و در زید دو روایت آمده که به تعبیر ایشان یک باب دیگری در این جلیز این خوندن نه خیلی نیست و این شاید تو بحث لازرم توضیح داریم بعضی از روایات لازرم بعدش راجع به بیه که بعد اون روایاته میخونن البته در اینجا از مسند احمد نقل کرده و از یکی دیگه حالا که تو ذهنم نیست از آباده مستند احمد جور دیگه ایسی طور نیست نه مستند احمد هم نیست بره. یکی از چیزهای دیگری که باز آمده یه است که به حقی هم نقل کرده حتی از بخاری هم نقل شده یه معامله است که پیغمبر با شخصی بنامه عدال ابن خالد ابن حوزه کرده پیغمبرم برمیست بسم الله الرحمن الرحیم این خیلی لطیفه هادا مشتر عدال ابن خالد ابن حوزه من محمد رسول الله سال الله علیه و عزم. امیر خیلی عجیب پیغمبر گفتن برس اشترا منه ابدان هو عمله آنها لا دا ولا لا خانه و لا خبئه خبئه پنهان کاری چیزی توش پنهان کاری نشد نه مرزی داره نه گرفتاری داره نه ناراحتی داره و نه چیزی که پنهان داره. بی المسلم المسلم خیلی لطیفه مسلمان با مسلمان با اینجوری معامل بکنه مرضی آفدی خیلی مدنه قشنگیه این از جز بقیه سنن قویه، این جز سنن فعلی رسول الله فردم بنویس هادا مشتر العدا ابن خالد ابن حوزه من محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم اشترامنه امنا او امتا الله دا غلا قائلن غلا خبئه یعنی که خبس هم چاک شده هم ولazem خربه باشه خبه اگر بله ها والله مثلا شده ولا چیه انشاءالله از اون بوده کارم والا خبسه شد خبسه باشه خبیث باشه به المسلم به المسلم مثلا من با بیعن ان... من با اعیبن لم یبینهو لم یزلفی مقتلا ولن تزل الملاحکتو تلحنهو دقیق میکنه این تأکیده این اون وقت قشم عورده من قشنا فلیس مننا لیس مننا من قش از مصند و مسلمون او داود و مصندق اینا نهار کرده من قشه فلیس مننا بیشتر این مت نرف شده ليس من نامن قش مثل من اوور و او ماکر کردن این هم خون برای م. این متر رو از امیر معامی ن که نهل سن کاافع ای در مسله مشهورشون نیست. تو کتابهایی ما این مت آمیم این هم خوونن برای فردا گرفتیم بر اساب ساده این م ليس من نامن قش سل من اوور و او ماکر ورسالو در کتاب مسلم آمده یا ما یا ما هادا یا صاحبت ام این هادا دست از عزت دین زیرش کدا خوش خوش بودیستان افلا جعلته فوق الطعام الذي يراه الناس این چیه و این بالا میذشت من قشنی فلیسه منی اینجا قشنی داره اما تو نسخه ای که من خودم روز خوندم بن قشه فلیسه منی این که ایشون جده زده مسلمان ابیگاره بروش در هیچ مسترگیه نیامده توی مسادر دیگه فلیس مننا من مننا مسلمین اما لیس منی نه عرض کردم این منقشنا فلیس مننا احتمالا توی یک جریان دیگه بوده چون یک جریان من شهر علی اصلا هم فلیس مننا به اون آمده در اینجا تبرهای نقل کرده منقشنا فلیس مننا و من به بنابل هر کسی که با تیر به حساب ما بزنه اونم از ما نیست این هست این هست در میان اهل سنت میگه تیر من حمل علی علیه السلام من شهر علی علیه السلام باز از مستد احمد نقل شده به ها با علیحدہ این کلمه هده که مضافه ص علیحدہ میگیم این علیحدہ غلط. ثوابش هده است هده مثل صفه مستر دو باب مثال وابی مثل بصف یصف و و صفت این علاهده یعنی علاهدتن به تنهایی و هادا علاهدتن خورماره بقیمت قیمت روش مثلا اون چیه اون که نرسیدش زهر بهش اونی که نرسیدیه که روش فمن غشنا فلیسه مننا این رو در مصند احمد در کتاب ابن النجار از ابن عمر نعمل کرده یا ایه لا لا نه او لا قشن بین المسلمین و رئیس مننا من قشن باز در تبرانی همون قصه نه یا صاحبت تا از فلا هادا مثل حالا من قشر مسلمین فلیس مننا منو. یکی از چیزهایی که باز در روایت امنا آمده در همه متونش نیست و خیلی لطیفه توی بعضی از متون این قصه یک کلمه اضافه هم داره ما قراکه یا ما حراک الله صنعت خیانت فی دینک و قشن در مسلمین تا اونجا درمیم اون متون خیلی دقیق بکنیم معلوم میشه که قش خیانت هم حساب میشه این نوع دات و رسول و تخونه اما نوته کن آیه مبارکه بله مثلا لا تو از زه و تم زهر وقتی که قرمز شده اما هنوز خورما نشده اینو با هم نفروشه بله یا لا تبایو و الغرر که از انس نهرکنه و ابن نجار نهرکن بله لا زر و لا زرار این لازره و لازره با این من در کتاب معتای مالک آمدید هر کردم به دواز سند شاید بهترین سند لازره هم نیست گره معتای مالکه خالی و مسلم و کتب احل سنت به استثنائی مثل مسلم در احمد نه بردن اصلا اونو ندارن در معتای مالک هست ابن ماجه هم مثل داره چرا من لازر را و لا منزار رزار و من شام پشخت آن لواهایی احتمالاً شاید زدنش به باب بین بی بی و هم فی و برای شهرسازی است راهی که مخواد بزرگ باشه حداقلش هفت الان با این ماشین هاستی مثلون خیلی کمه دحمتیش هم زحمت زحمتی بله ببین مثلا از اون بعدها ببینید یکی از که من از ترس سال مؤمنه کسی که بیگ مسلمانی، به مؤمنی اطمینان پیدا کرد، برو رو و قبول کرد فقبنو کان قرن موزالک ریاه هم یا رباه هم با اینجا ریاه با باید رباه اسا جز و ربایتی که نقل شد از وزیفه که ایشونی میگه رویت آخر زمان نداره الا این بعد زمانکن حالا زمانن از اون زمان بعد از این زمانشون زمان سختی میان یعنی زرمون سوا حالا مافیدهی هزاران انفا آدم پود دار باز میگیره که من با کمک میکنم مقدر و حالا دارو تالا ما انفقتون میشه و یخلیفون و سید و یبایون کل که خیلی عجیب در فشار قرارم میگم مجبور میکنم خونش اغزون بده که از او بخن الان ام نبی المسترده این حرام المسلم آخر مسلم لا یغلمه ولا یخله امکانه اندک معروفان فقط بیه علا اخی اگر کار خوب به برادر نجام بده ولا تزده هلاکه اله حلاکه. این کار رو یه مجموعه یه روایت که میدارشو خوندید پوشن شد از این مجموعه یه روایت زمینه قشنی که را حساب شد دیگه معلوم شد که در اسلام اقام برکتان به مسئله قشن و فروهش قرار هست، جهره هست خلابه هست، خداه هست محفلات هست، مسرات هست به تمام اینها در اسلام حساسیت داده شده پس این هم زمینه هست. احلی سنت فردانی شما باز برمیگردیم به بساقه روایتی که ما از احلی سنت نهار کردیم که متاسفانه خیلی داشت فیلن در کتاب حتی